الا، بوستون، 19 مه 2008 یک روز بعد، حدود ظهر، الا کتاب را تا جایی که خوانده بود، علامت زد و ملت عشق را به کناری گذاشت. از رمانی که می‌خواند خیلی خوشش آمده بود. اما راستش به خصوص درباره نویسنده رمان کنجکاف شده بود. به اینترنت وصل شد در موتور جستجوی گوگل عین زاهارا نوشت با آنکه خیلی کنجکاو بود امیدوار نبود چیز زیادی درباره نویسنده پیدا کند شاید بهتر بود تلفن را بر می داشت و از میشله می پرسید. اما وبسایت شخصی زاهارا به شکل غیرمنتظره روی مونیتور هویدا شد. تمام صفحه با تارپود فیروزهی و بنفش روشن بافته شده بود. بالای صفحه تصویر متحرک آدمی بود که آهسته آهسته می چرخید و موقع چرخیدن دامن سفید لباسش در هوا شکل دایره رسم می کرد. الا که پیش از این رقصنده سما ندیده بود، حسابی تماشایش کرد. اسم وبسایت تخم جان بود و شعری هم با همین عنوان داشت. مانند پرنده قریب نتوانی پرید مادامی که آنجایی در پوست تخم جان. نترسو بشکن پوست را به سلامت خواهی پرید. صفحه اینترنت پر بود از کارپستال شهرها و جاهای مختلف دنیا زیر هر کارپستال نظرهایی درباره آنجا نوشته شده بود الا موقعی که این نظرها را می‌خواند متوجه سه نکته شد اول حرف عین در عین ز زهارا مخفف عزیز است دوم عزیز صوفی است و حرفش عکاسی است. سومین که فعلا در گواتمالا مشغول سیر و سیاحت است. آخرین اکس و نوشته را روز قبل در وبسایتش گذاشته بود از گواتمالا. روی پلی که توی صفحه بود کلیک کرد و به اکس هایی که عزیز انداخته بود رسید. بیشتر اکس ها، پورتری آدمهایی از هر رنگ و سن و فرهنگ و طبقه بود. همه این آدمها با وجود تفاوت‌های عمیقشان یک وجه مشترک داشتند. در هر پورتری حتما یک نقص بود. نقص بعضیهایشان هایشان چیز ساده‌ای بود. یک گوشواره، یک پاشنه کفش یا یک دکمه اما نقص بعضی ها وحشتناک بود. بعضی انگشت نداشتند، بعضی پا یا دست. به هر ترتیب در هر کدامشان نقصی جلب توجه می کرد. الا کنجکاف شد. عزیز برای چه عکس این انسان ها را می انداخت؟ جوابی را که دنبالش بود در نوشته زیر ها پیدا کرد هر که باشیم هر کجای دنیا که زندگی کنیم همگی جایی در اعماقمان نوعی حس کمبود داریم انگار چیزی اساسی گم کردهایم و میترسیم نتوانیم آن را پس بگیریم آنهایی هم که میدانند چه چی چیزی کم دارند؟ واقعا انگشت شمارند الا بارها صفحه وبلاگ را از بالا به پایین و از پایین به بالا گشت. روی کارت پستال ها کلیک کرد و تفسیرهای های عزیز را خواند. در انتهای صفحه یک نشانی ایمیل پیدا کرد. عزیزه gmail.com. نشانی را گوشه‌ای یادداشت کرد در زیر آن یک قطعه شعر بود ای گم شده در خود ندانی بدنت مزار تو شده چون نفست را ای، نفست گورکن تو شده الا موقعی که داشت این شعر را می‌خاند برای یک لحظه هم که شده حس غریبی پیدا کرد گویی همه چیز در وبلاگ شخصی عزیز زهارا یعنی همه عکس‌ها، تفسیرها، نوشتهها، شعرها، خلاصه تک تک همه چیزها صرفاً برای او آنجا گذاشته شده بود. احساس کرد هر چیزی که میبیند و می‌خواند خطا به اوست. این احساس می‌ترساندش. کمی هم باعث قرورش می میشد اما نمیتوانست جلوش را بگیرد دم قروب خسته و کوفته کنار پنجره نشست آخرین پرتو آفتاب بر پشتش میتابید و بوی کیک شکلاتی داخل فر همه جا پیچیده بود ملت عشق جلوش باز بود و منتظر خوانده شدند اما ذهنش چنان مغشوش بود که نتوانست رمان را دوباره به دست بگیرد. چیزهای مختلف در ذهنش میچرخید. ریزی برای روز بعد، هفته بعد، سال بعد و نوشتن یادداشت‌های گوناگون روی کاغذهای رنگی پشت چسبدار و اینور آنور چسباندنشان مهلت نمیداد خودش را در لحظه حاضر ببیند زیر لب گفت شاید بد نباشد من هم قواعد خودم را درست کنم و روی کاغذ بیاورم چهل قاعده زنان خانه‌دار زله از دست زندگی با صدایی گرفته گفت قاعده اول خودت باش و دنبال عشق نگرد در زندگی چیزهای مهمتر از عشق هست. اما این حرفها ها که فکر میکرد مثل نوعی لطیفه است، به جای خنداندنش باعث شد حسابی دمق شود. گوشی تلفن را برداشت. پس از مدتی تردید، سرانجام تصمیم گرفت کاری را بکند که از صبح در فکرش بود. به دختر بزرگش تلفن کرد جوابش را منشی تلفنی داد یانت عزیزم منم مادرت میدانم زنگ زدنم به اسکات کار اشتباهی بود اما حرفم را باور کن قصد بدی نداشتم من فقط کلمه ها در گلویش ردیف شدم کاش قبلا به حرفهایی که میخواست بزند فکر کرده بود. صدای چرخیدن نوار منشی تلفنی را میشنید یا گمان می کرد که میشنود. این فکر که با گذشت هر ثانیه زمانش کمتر می شود اعصابش را بیشتر به هم ریخت. نیرویش را جمع کرد و جملهاش را به پایان رساند. جانت، به خاطر چیزهایی که پیش آمده خیلی متاسفم، اما اگر بدانی چقدر احساس بدبختی می کنم، چنان ناراحتم که تق نوار ایستاد. الا ما تش برده بود، باورش نمیشد این حرفها از دهانش درامده باشد، یعنی یک دفعه چش شده بود. واقعا بدبخت بود خودش نمیدانست چنین حسی دارد یعنی ممکن است آدم بدبخت بی که خودش متوجه بدبختیش باشد به زندگی ادامه دهد اما حتی اگر این حرفها نوعی اعتراف هم بود ناراحت نبود از اینکه بر زبان آورده بود بیشتر حالتی داشت انگار درونش یخ کرده بود. راستش خیلی وقت بود احساس شدیدی خوب یا بد حس نکرده بود. کمی بعد چشمش افتاد به تکه کاغذی که نشانی ایمیل عزیز زهارا را رویش یادداشت کرده بود. نشانی ساده و سرراست بود. انگار آدم را دعوت میکرد. بیان که خیلی فکر بکند، آنی تصمیم گرفت و نامه نوشت. عزیز زه زهارای عزیز، اسمم الاست. در انتشارات آربیتی دستیار دستیار ویراستارم و رمان شما با عنوان ملت عشق را می خانم. راستش تازه شروع خواندنش کردم، اما با لذت زیاد پیش میروم. البته این فقط نظر شخصی من است از ابتدا متذکر بشوم که نامه دیدگاه ویراستارها را منعکس نمی کند این که من رمان شما را دوست داشته باشم یا دوست نداشته باشم چندان تأثیری در انتشار آن ندارد پیداست معتقدید عشق جوهر زندگی است و اینطور که به نظر می رسد چیز دیگری در نظرتان اهمیت ندارد. من مثل شما فکر نمی کنم اما قصد ندارم وارد بحث های بیهوده بشوم. دلیل اینکه برای شما نامه می نویسم این است که خواندن رمانتان با مقطع عجیبی از زندگیم مصادف شده است. این روزها مشقله ام این است که دختر بزرگم را از فکر ازدواج در سن پایین منصرف کنم. دیروز به دوست پسرش زنگ زدم و گفتم باید از تصمیم ازدواج سرف نظر کنند. الان دخترم از من متنفر است. قهر کرده حرف نمی زند. احتمالا شما بهتر از من دخترم را درک می کنید. چون فکر می کنم نگاهتان به عشق مثل نگاه اوست ببخشید از اینکه مسائل شخصیم را همین جوری یک دفعه‌ای با شما در میان گذاشتم. قصدم این نبود. آنطور که در وبلاگتان ای، الان در گواتمالا هستید. راستی، آدرس ایمیلتان را هم از وبلاگتان برداشتم. گشتن دور دنیا لابد خیلی هیجان انگیزه است. اگر روزی گزارتان به بستان افتاد، خوشحال می شوم از نزدیک با شما آشنا بشوم. فنجانی قهوه بخوریم و صحبت بکنیم. با تقدیم بهترین آرزوها، الا. به کلمه ها احتیاج داشت. در این دوره که ارتباطش نه فقط با شوهرش بلکه با کل خانواده ضعیف شده بود، الا در حسرت کلمه ها بود حالا که در اطرافش کسی را نداشت که با او حرف بزند و درد دل بکند، پیدا کردن یکی که بشود با ایمیل با او مکاتبه کند، از هیچ بهتر بود. جایی که صحبت کم می شود، نوشته کافیست اولین نامی که الا برای عزیز نوشت بیش از آن که دعوت سادهی برای قهوه خوردن باشد در اصل نوعی جیق بی صدا فریاد کمکخواهی بود گرچه وقتی با حالت شرمندگی توی آشپزخانه نشسته بود و برای نویسندهی گمنام که نمی و گمان هم نمی کرد روزی به شناسدش نامه میفرستاد، حتی متوجه هم نبود که چنین درخواست مهمی کرده است. اگر متوجه بود چه کاری دارد می کند، اصلا جسارت انجام دادنش را پیدا می کرد؟